ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت و مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت خوابم بشد از دیده در این فکر دیگر سوز کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت درویش نمی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای سبابت راه دل اشاق زدان چشم خماری پیداست از این شیوه که مسته است شرابت تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت تا باز چه اندیشه کند رای سبابت هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی پیداست نگارا که بلند است جنابت دور دورست سر آب از این بادیه خشدار تا غول بیابان نفری بد به سرابت تا در ره پیری به چاین رویه ای دل باری به غلط سر شد ایام شبابت ای قصر دلفروز که من زلگه اونسی یارب مکن آدافت ایام خرابت حافظ نقلامیست که از خاجه گریزد سلخی کن وازا که خراو بم زی